بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به درس ششم الفصل الثالث فصل سوم الاسم المعرب اسم معرب الاسم المعرب نوع آن اسم معرب بر دو نوع است الف منصرفون منصرف به غیر منصرف چون کتاب نه بحثش در مورد آخر کلمات باید از این زاویه می و تقسیم بندیش میکرد اسم مورا بود چون غیر منصرف ها تنوین و کسره برشون داخل نمیشه لذا اگر غیر منصرفی اومد مجرور شد دیگه به جای کسره بهش فتح میدیم لذا این تقسیم بندی رو آورده است الاسم المعرب نوعان منصرف و غیر منصرف منصرف و هو ماله سفیهی سببانی من الاسباب تسعت الاتیه منصرف اون هست که دو سبب از اسباب نهگانه زیر از اسباب نهغانه ای که میآیند درش موجود نباشد نحبو سعید مانند کلمه سعید این منصرفه و ما متمکنن متمکن نامیده میشه غیر که م... منصرف و حکمه حکم منصرف ان تدخله الحركات الثلاث مع التنوینی حکمش که داخل می حرکات سگانه فتح کسر زمه با تنوین مثل انتقول ماننده جانی جا سعیدون رئی تو سعیدن مرر تو به سعیدن سعیدون سعیدن سعیدن در این ترکیب با غیر منصرف دومین نوع اسم مورعب از این زاویه از این اعتبار غیر منصرف است و هو ما فیه سببانی من الاسباب تسعه غیر منصرف است که دو سبب از اسباب نهگانه در آن باشند دو سبب از اسباب نهگانهی که می درش باشند او واحدون من منها یقوم و مقامه هما یا یک سببی در اون کلمه باشد که جای دو سبب رو می گیرد یک سببی که جای دو سبب و اینا دو تا هستند علفه مقصوره و ممدوده مانند صغره حمراء و منطحل جموع یعنی اگر کلمه منطحل جموع بود غیر منصرفه به تنهایی کافی است خود منطحل جموع جای دو سبب رو گرفته مانند مسابیح بگیم غیر منصرفه چون منطحل جموع هست ولی در ابراهیم با دو سبب باشه تا غیر منصرف باشه میگیم ابراهیم یک علم دو غیر عربی هست کلمه است غیر عربی پس برای اینکه کلمه غیر منصرف باشد دو سبب درش باشد یا یک سببی که جای دو سبب رو میگیرند اون اسبابی که جای دو سبب رو میگیرند علیف مقصور و ممدوده هستند و منتحن جنون و حکمه او حکم غیر منصرف چه هست؟ الله تدخوله الكسرت و التنویه کسره و تنوین برش داخل نمی و یکونو فی موضع الجره مفتوحن زمانی که اعرابش مجرور باشه نقش مجروری داشته باشه فتحه میگیرد و یکونو فی موضع الجر در جایگاه جر مفتوحن فتحه می میگیرد مفتوح می باشد کمامر همانطور که در قسمت اسناف اعراب رد شد و الاسباب التسعه اسباب نهگانه عبارتند از <تصح> العدل والوصف والتأنيث المعرفة كمن ألم از نوع معرفة العجمة جانة كمون ته الجمهور شد التركيب وزن الفعل ألف والنون الزائدة إنا نح سبب مدن كل هر كدوم التوزمي دين دي نياز نستكرار كليم وتفصيلها كما يعتين تفصيل بشكل كم يعتين یک عاد اولین اولین سبب از اسباب غیر منصرفی که کتاب آورده است عدل است توضیح می‌دهد عد یعنی چی و هو تغییر اللفظ من صيغته الاصليه الى صيغه اخرى عاد تغییر لفظ از صيغه اصلی به ای دیگر بلا تغییر فی معنا بدون اینکه معنا تغییری کند وهو على قسمين ان عادل بردو قسمين تحقيقي تقديري تحقيقهمون حقيقي هست نحو مثنى وثلاث كلمة مثنى وثلاث غير منصرفاً چرا؟ چون أصل مثنى اثنين اثنين بوده است. و أصل ثلاث ثلاثة ثلاثة بوده هست وهما معدولان حقيقةً عن اثنين اثنين وثلاثة وثلاثة حقیقتن کلمه مثلا و ثلاث عدل شده تغییر کردند از اسنین اسنین و ثلاث ثلاث موقعی میگیم جاعت طلاب و مثلا معنیش این است که آمدن طلاب دوتا دوتا سلام علیکم خب پس حقیقی شد از این با تقدیری، عدل تقدیری نحو عمر و زفر این تقدیری بر وزن فعاله حیث قدر رفیه ما عدول ان آمر و زفر تقدیر بر این هست که عدول عمر و زفر از آمر و زفر بوده از اسم فائل بوده اومده بر وزن فعال لیوجه به من اصرف تا توجیح بشه به وسیله این من اصرف بودنش غیر منصرف بودنش و علیم من ذلك ان العدل یجتمع مع العصف في الأول و دانستش که عدل جمع میشه با وصف در حقیقی یعنی عدل تحقیقی عدل بتانای کافی نیست تا کلمه غیر منصرف بشه سبب دیگه ای که باید باش جمع میشه چیه؟ وصف هست پس مثلا میکیم غیر منصرفه چون یک عدل هست دو وصف اما عدل تقدیری و مع العلمیتی با علم بودن جم میشه مانند عمر. بگیم عمر عدل تقدیری هست سبب دوم همش چی هست؟ علم هست اسم خاص هست ولا لا و مع وزن الفیل اصلا با وزن فیل هرگز جم نمیشود یعنی پیش نمی کلمه ای عدل باشه و بروزن فیل باشه این شد از اولین سبب از اسباب غیر منصرف دو الوصف دومین دو سبب وصف هست و شرط و یکون وصفن فی اصل الواضعی شرط وصف این هست که در ابتدا که کلمه رو درست کردن و وضعش کردن به بعنای وصف باشه نه اینکه الان ما جای اونو وصف قرار بدیم در جملهی فا این اسود و ارقم غیر منصرفند اسود و ارقم اینا غیر منصرفند و انسار اسمین للحیه گرچه الان اسمند اسم, اسم مارند اسود به مار سیاه گفته میشه ارقم همچنی به مار سیاه و سفید ولی در اصلشون اسود و ارقم وصف هستند اسم نبوده اند لعصانتهما في الوصفية بخاطر اینکه در اصل وصف هستن و اربع في قول که مررت به نسوات اربع رد شدن از چارزن این منصرفه بوجود اینکه اینجا صفت هست چرا تون اصل کلمه اربع دلالت بر عدد میکنه برای وصف درست نشده است برای وصف وزن نشده است معانا فيه وصفیتا و وزن الفعل بوجود اینکه در اربع وصف وجود داره و بر وزن فعله لعدم الاصلیتی في الاصل اما در اصل برای وصف وازن نشوده گرچه الان معنای وصفیتو داره ولا لای الوصف مع معلومیتی اصلا وصف با علم جمع نمیشه یعنی امکان ندارد وصف با علم جمع بشه ابراهیم مثلا اوجمه است علم هم هست اینجا علم و وجمه با هم جمع شدن ولی در وصف امکان نداره که وصف و علم با هم در یک کلمه جمع شند و غیر منصرفش کنند سبب از اسما با غیر منصرف از تعنیس به تا، تعنیس به وسیله تا. و شرط ها یکونه علمان شرط این تعنیس باتر این است که علم باشه بعضی اصلا شرط توشون اینه که علم باشن. یکی از اونا تعنیس هست تحنیس بوسیلی تا نحو تلحتو و فاتمتو تلحا که معنس لحفظی هست تادرشو مده و فاطمه میبینیم که تلحا هم اسمه علمه فاتمه هم اسم علمه و کذل معنوی و همچنین معنس معنوی شرطشینی که با علم جمشه و هو ماجعه لعلما لی معنس دون علامت تحنیس معنس معنوی اونیه که برای معنس وز شده کلمه است که دلالت بر معنس میکنه اما علامت تانیزی درش وجود نداره مانند زینب پس زینب هم غیر منصرفه چون علام هست و معنس ولی در مورد معنس معنوی یک نقطه ای رو توضیح میدیم گه ثم المعنس المعنوی انکان سلافیان ساکن الوسطی غیرعزمین یا جوز و مع وجود السببین. میگه معنس معنوی ثم المعنس المعنوی معنس المعنوی انکان ثلاثیا اگر سحرفی بود ساکن الوسطی وسطش ساکن بود غیر اعجمی اعجمی نبود سحرفی بود وسط ساکن بود اعجمی نبود جائزه که منصرفش هم قرار بده. یا جوز صرفه جائزه منصرف بودنش معوجود با وجود این که دوتا سبب داره یعنی هم این که معنسه و هم این که علم هست نحو هند مانند هند پس اگر مؤنث معنوی وسطش ساکن بود سه حرفی بود و غیر اعجمی بود غیر اعجمی بود منصرف بودنش هم جایزه لعجل الخفه به خاطر بودنش بوتنش والا وجب اوه وگر نه و در غیر این صورت یعنی این شرایط رو نداشت وجبه من اوه واجب است که غیر منصرف باشد نحو زینب و سقر و ماه و جور مانند این چهار کلمه زینب که خب سلاسی اصلا نیست سقر سلاسی منطقه وسطش حرکت دارد ماه هم درسته وسطش ساکن دارد با جور منطقه اینا غیر اینا عجمی اینا عجمی هند و التعنیس بالالف المقصورتی نحو هبله ادامه دارد بحث میگه نگه تعنیس بوسیله الف مقصوره غیر منصرف هست تأثیر بوسیله چی الیف مقصوره مانند حبله و ممدوده مانند حمره مقصوره اونیه که بعد از دیگه همزه وجود ندارد اما بعد از ممدوده همزه وجود دارد صرف هو البته قطعا غیر منصرف است. ممتنع صرف هست لان الالف قائمون مقام السبب چون الف قائم مقام دو سببه یعنی اگر کلمه ای الیف ممدوده یا مقصوره داشت برای غیر منصرف بودن اون کلمه همین یکی کافیه دو دنبال سبب دومی نگردیم چون ما در ابتدای درس گفتیم که بعضی از اسباب جای دو سبب میگیرن یکی از اون اسباب همین الف تأنیث است پس این الف جای ای دو سبب میگیره یک از تأنیث یکی اینکه تأنیثه و لزومیه یکی اینکه این الف این لزومیه مثل تای تاء نیست که چه بسا حس میشه این تا همیشه و همیشگی به لزومیست فکر انهو اون نتمرتن گویا که پس کلمه دو بار معنیس شده به خاطر این میخواد توجیح کنه که چرا علف جای دو سبب رو میگیره میدید فکر انهو اون نتمرتن. گویا که پس کلمه دو مرتبه معنیس شده است اینا شدن سه سبب از اسباب غیر منصرف چار المعرفه چارمین سبب معرفه газ ولا يعتبر في منع السرف بها إلا العالمية معرفه يشززن معرفه بسلقه وفلام معرفه بسلقه زمير فلان وفلان, وفلان. منظوره في معرفه در قسمة غير منصرف منظورش فقط من علم بودنا من معرفه ألم, ألم اعتبار ده. ولا يعتبر في منع السرف بها إلا العالمية اعتبار نضرت در منع الشرف بودان مجر علمش وتجتمع مع غير الوسف علم با تمام اسباب دیگه جمع میشه جز وصف که در قسمت وصف هم اینو توضیح داد که وصف با علم جمع نمیگردد در قسمت وصف گفت که وصف با علم جمع نمیگردد مانند ابراهیم و احمد ابراهیم میگیم غیر منصرف چرا؟ چون معرفه هست؟ چول علم هست از بس که علم بودن فقط اعتبارداره، اعتبار داره ما خودمون در جلوترها زمانی که غیر منصرفی بیاد فوراً میگیم علم یک این که علم هست دو اجمه هست ابراهیم غیر عربی هست احمد یک اسم خاصی احمد معرفه هست بقولی دو بر وزن فعل هم هست لذا اینا چهار سبب از اسباب غیر صرف بودن که در این درس خوندیم موفق و پیروز باشید